سلام میکنم خدمت شنواندگان کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افثانهی صوتی با کتاب افثانه های در خدمتون هستم داستانی رو از این کتاب بهتون تقدیم میکنم از بخش دوم قصه های و جادو و اسم داستان هست دانیلوی نگونبخت به نام خدا روزی روزگاری مردی به نام دانیلو زندگی میکرد که بسیار بدبخت و بدشانس بود. هر کاری میکرد و هرچه میساخ باعث بدبختی و زیانکاری اون میشد. هرچه رو میازمود جز حسرت و پشیمانی حاصلی براش نداشت. روزی پیش اربابی رفت که مزرعه بسیار بزرگ و وسیعی داشت و به اون پیشنهاد کرد که یک سال براش کار کنه و در پایان سال مقداری گندم به عنوان موزد ازش بگیره عرباب قبول کرد و دانیلو با شوق و ذوق فراوون کارش رو شروع کرد. زمین رو شخم زد، بسرها رو کاشت و آبیاری کرد و گندم ها کم کم رویدند و قد کشیدند و به رنگ طلا در اومدند. دانیلو خوشحال و بسیار امیدوار بود و گفت فردا گندم ها رو درو میکنم و حقوقم رو میگیرم و نفس راحتی تو این زندگی تلخ و فقیرانه میکشم. اما چشمتون روز بعد نبینه. همون شب عبرهای سیاهی تمام آسمون رو گرفتند و تگرگی شدید و ویرانگر باریدن گرفت و تمام مزرعه رو شست و نابود کرد و دسترنج یک سال کار و عرق ریختن دانیلوی بیچاره نیست و نابود شد دانیلو به ترخی گریست و با خودش گفت این چه وقت و اقبالیه که داره و چرا هیچ وقت کارش به فرجام خوشی نمی مدتی ناامید و کسل بود. اما چه باید کرد؟ زندگی باید کرد. نمیتوان دست روی دست گذاشت و تسلیم سرنوشت شد. روز از نو روزی از نو. رفت و رفت تا به در خانه اربابی دیگر رسید و از اون خواهش کرد اجازه بده یک سال برای اون کار کنه و در آخر سال اون کره اسب به پشمالو رو به وی بده. ارباب قبول کرد. دانیلو کارش رو با جدیت و امید فراوون شروع کرد. کر اسب هم روز به روز بزرگتر و زیباتر می شد و امید و شادی دانیلو رو بیشتر می کرد. کار می کرد و کار می کرد. اما این بار نیز بخت با اون یار نشد. و شبیه گرک های گرسنه حمله کردند و کر اسب زیبای اون رو خوردند. دانیلو باز هم نومید و شکست خورده از نزد اون ارباب رفت تا وقتی سیاه خودش رو جای دیگه ای امتحان کنه. بعد نزد اربابی دیگر رفت که مزرعه با شکوهی داشت. تو اون مزرعه سنگ قبر بسیار زیبایی بود که چشم اون رو گرفت و دانیلو پیشنهاد کرد که یک سال برای اون کار کنه و ارباب در ازای اون سنگ قبر قدیمی و زیبا رو به اون بده. ارباب قبول کرد. دانیلو کارش رو شروع کرد و سنگ روز به روز درخشانتر می شد و رنگش تغییر می کرد. یک سمت اون سرخ، یک سمتش ای و سمت دیگهش تلایی شد و شوق و امید در دل دانیلو بیشتر و بیشتر می شد. اما آخرین شب کار دانیلو در اون سال دزد ناجوانمردی از گرد راه رسید و سنگ قبر قدیمی و عتیقه رو دزدید و برد و داغ اون رو بر دل دانیلو گذاشت. دانیلو باز هم نشست و های های به حال و روزگار خودش گریه کرد و به زمین و زمان دشنام داد و با خودش زمزمه کرد و آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه. دست آخر با خودش فکر کرد تنها جایی که داره تا و بخت خودش رو دوباره امتحان کن و شاید با جاهای دیگه تفاوت داشته باشه قصر سزار باشد. هرچه باشه از سزار مانند پدر ملت و درگاه او جای امن و آفیته. بعد نزد سزار رفت و از گذشته اندوهناک و بخت نامساعد خودش شکایت و خواهش کرد که سزار مهربان و مردمدار کاری به اون بده و گره از کار فرو بسته اون باز کنه. سزار دلش به حال اون سوخت و گفت من هم فرصتی به تو میدم و امیدوارم این بار بد نیاری و به مقصد و مقصود خودت درسید. دانیلو کار خود رو تو گوشه ای از کاخ بزرگ و با شکوه سزار شروع کرد. شب و روز عرق ریخت و با جان و دل کار کرد. کار کرد و کار کرد. و از همه همگروهی های خودش سبقت گرفت و سرآمد روزگار خودش شد. بوی کوکب اقبال اون رو به اوج داشت و روز به روز موفقتر تر می شود. سزار هم از پیروزی و خوشبختی دانیلو خوشحال بود و روزی به اون گفت می خواد در قبال زحمت ها و موفقیتاش پاداشی شایسته بهش بده. دانیلو خوشحال و شکر گذار آماده پاداش گرانبها ها و بینظیر سزار بود. سزار دستور داد سه بشکه پیش اون بیارن یکی پر از طلا دیگری پر از دوغال سنگ و سومی پر از سنگ ریزه و به اون گفت اگه بتونه بشکه پر از طلا رو تشخیص بده اون رو سزار روسیه میکنه و حکومت رو بهش میسپاره اگه زغار سنگ رو انتخاب کنه آهنگر دربار میشه و اگه بشگه پرست سنگ ریزر رو انتخاب کنه سزار هم باور خواهد کرد که دانیلو واقعا و بیشک انسان بدبختی و کاری نمیتونه برای اون انجام بده جز اینکه سزار یک اسب و یک تفنگ بهش بده و از سرزمین روست اخراجش کنه تا شاید در سرزمین دیگری گیره بخت و اقبالش باز بشو روی خوشبختی رو ببینه قلب دانیلو مثل قلب گنجش که در دام افتاده می تپید. نفسش بند آمد و آب دهانش خشک شده بود. با ترس و اضطراب فراوون دورو برسه بشکه گشت و گشت و گشت و سرانجام دل به دریا زد و یکی از بشکه را انتخاب کرد. حدس بزنید این کدام بشکه بود؟ نه متاسفانه وقتی در بشکه را باز کردن، اون رو پر از سنگیزه دیدن و آه از نهاد دانیلو و اطرافیانش بلند شد. سزار گفت دانیلو بیچاره تو واقعا بدبختی. برو از مسئول استبل دربار اسبی رو تو خوب بگیر و برو برایت آرزوی بهروزی و کامیابی دارم. دانیلو گریان و پریشان سوار بر اسب شد و راه افتاد. سه روز و سه شب رفت و رفت و هیچ چیزی برای خوردن پیدا نمیکرد. کن خودش سخت گرسنه بودن در نهایت نومیدی و گرسنگی چشم دانیلو از دور به علفی افتاد و خوشحال شد که دستکم اسبش از گرسنگی و مرد نجات پیدا میکنه. اما همین که به علف نزدیک شد ناگهان علف آتش گرفت و دانیلو گریه سر داد قریبانه ترین و سوزناک ترین گریه هایی که در تمام عمرش از اون شنیده شده بود در دل صحرا تنی نفکن اما ناگهان از دل آتش فروزان و سوزان صدایی به گوش دانیلو رسید که التماس میکرد که اون رو نجات بده وگرنه می و خاکستر میشه دانیلو گفت ای بیچاره چطور میتونم تو رو نجات بدم؟ آتش تند و سوزانه و من نمیتونم حتی یک قدم به نزدیک نزدیک بشم صدا از دل آتش گفت تفنگت رو به سمت من دراز کن تا لولش رو بگیرم. بعد از اون تو مرا از آتش بیرون بکش. دانیلو این کار رو کرد و وقتی تفنگش رو بیرون کشید دید ماری بلند و بسیار خوشخط و خاله. باز هم به یاد بخت خود افتاد و با خودش فکر کرد امروز هم از دل آتش مار بیرون آوردم. آخه این مار چه سودی به حال من بیچاره داره؟ مار از اون بسیار تشکر کرد و خواست که اون رو تا خونش برسونه. دانیلو پرسید چگونه میتونه راه خونه اون ما رو پیدا کنه. مار ازش خواست که اون رو بر پشت اسبش سوار کنه و هر طرف که مار سرش رو برمیگردونه دانیلو اسب رو به اون طرف هدایت کنه. دانیلو اسبش به همراه مار رفتند و رفتند تا به استبلی رسیدن که حیاتی بسیار بزرگ و و چشم نواز داشت. مار از اسب به روی زمین پرید و گفت اکنون چند دقیقه اینجا بمانید تا من داخل استبل برم و برگردم. مدتی گذشته از مار خبری نشد. دانیلو که از اقبال خودش بسیار شکایت داشته این بار هم خودش رو فریب خورد و زیان دیده احساس میکند. راه افتاد تا بره اما ناگهان در استبل باز شد و مار به شکل دختری بسیار بسیار زیبا در لباسی شکوه من و شاهانه در آسانه در پیدا شد. در حالی که میخندید و با مهربانی ها عدم تمام دانیلو رو به داخل خونه خوش دعوت کرد تا استراحتی کنه و آب و خوراکی بخوره. دانیلو را به درون چادری برد. دو چاه در حیات خانه دیده میشد. از یکی از چاهها ها برای اسب اون آب کشید. و اون را با مقداری جو اولوفه و اولوفه اسب اصبه گرسنه و تشنه خسته گذاش. سپس برای دانیلو آب و غذا آماده کرد و آورد. دانیلو به اسب خودش نگاه کرد دید هرچی از علوفه میخوره ذره ازش کم نمیشه. بعد به غذای خودش نگاه و متوجه شد که اون هم زره ای کم نمیشه و پروپیمون باقی میمونه. چشماش از تعجب گرد شد. دختر بهش گفت بهتر کمی اشتراحت کنه و شب اونجا بمونه. دانیلو ازش تشکر کرد و اون شب در اون خونه خوابید روز بعد دختر بعد از صرف صبحانه از دانیلو خواست تو توفنگ از و لباسش رو به اون بده و دختر در قبال اون تجهیزات و لباس دیگر بهش بده دانیلو پذیرف اسب و لباس و تفنگش رو به دختر زیبا داد و دختر اسب و لباس و تفنگ دیگه بهش داد و گفت الان تو با این تفنگ میتونی نیرومندترین دشمنا رو بکشی و اگر این لباس رو بپوشی هیچکس نمیتونه بر تو چیره بشه و به تو آسیبی برسونه الان سوار شو برو تا به مهمون خونه ای برشتید. در اونجا اتراخ کن و به زودی خبردار میشی که سزار به دنبال مرد شور و قدرتمندی میگرده تا به عنوان پاداش دختر زیباش رو به اون بده. تو با این قدرت و شکرتی که اکنون داری برو دخترش رو خاستگاری کن و تا هفت سال راز شکست ناپذیری و قدرتمندی خودت رو به دختر نگو وگرنه بدبخت میشی. دانیلو دختر زیبا رو سپاس گفت و باهاش خداحافظی کرد و رفت و رفت تا به مهمون رسید و باخبر شد که دشمن قدرتمندی پیدا شده و قصر سزار حمله کرد و دخترش رو دزدیده و سزار در جستجوی سلحشوری که دخترش رو نجات بده و سزار هم دختر خودش رو به پاس این شجاعت و فداکاری به اون بده دانیلو راه قصر سزار رو پرسید و رفت تا به اونجا رسید و پیش اون راه یافت و اعلام کرد که میخواد با دشمن به جنگ و دخترش رو نجات بده. به شرط اون که سزار دو جنگ جویه. کزاک همراه وی کنه تا نگهبانی بده و از هرچه میگذره اون رو خبردار کنه. سزار پذیرفت و اون رو با دو کزاک راهیه نبرد کرد. دانیلو با یارانش به جنگ رفت و یک تنه لشکر دشمن رو تارمار کرد. طرزمین اونها رو تصرف و دختر سزار را آزاد کرد و سزار هم طبق قولی که داده بود دخترش را به دانیلو داد خبر ازدواج اونها در تمام کشور پیچید و خاستگاران اشرافی و ثروتمند دختر که سالها در آرزوی پیوند با او سوخته و ساخته بودند بسیار خشمگین شدن در روی حسادت و تنگ نظری توته ها کردن و دستیسه ها چیدند و سزار رو سرزنش کردند که چرا دخترش رو به اون جوون بی اصل و نصب و گم و گدا داده و اون همه خاستگار جوان زیبا و ثروتمند و نامدار و نادیده گرفته سزار به بدگویی ها و بدخواهی های اونها اتنایی نکرد بعد اونها به سراغ دختر سزار رفتند و او رو سخت نکوهش کردند که چرا از خاستگاران اشرافی خودش چشموشی کرد و همسر مردی گمنام و فقیر شده و از اون خواستن تا جستجو کنند و دلیل و قدرت و آسیب ناپذیری اون رو پیدا کنند تا رقیبان بتونن اون رو شکست بدن و دخترم بتونه با یکی از اون جوانان اشرافی ازدواج کنه. دختر سزار فریب خورد و با نیرنگ و دسیسته و چرب زبانی بارها و بارها از دانیلو پرسید راز قدرت و شکست ناپذیری اون چیه؟ و دانیلو که از سماجت دختر خسته شده بود گفت راز اون دستکش دانیلوه که چنین قدرتی بهش داده. شب هنگام دختر سزار دسکش های دانیلو رو پنهان کرد. روز بعد دانیلو با یاران و البته رقیبانش به شکار رفتن. اونها دانیلو رو در گرما گرم شکار غافلگیر کردند و به اون شبی خون زدن اما اون با صلاح خود باهاشون جنگید و چند نفر رو کشت و بقیه رو اسیر کرد و به افکند حسودان و رقیبان از پای ننشستند و باز دختر رو تشویق کردند که بکوشه از راز کار دانیلو سر در بیاره دانیلو این بار گفت راز شکست پوتین هاشه. دختر سزار پوتینهاشو هاش رو و به دشمن داد. اونها تو فرصت مناسبی به جنگ دانیلو اومدند و این بار هم اونا رو شکست داد. جمعی رو حلا کرد و گروهی رو به سیاح چال انداخت. زن دانیلو باز هم سماجت کرد و با جادو و افسون از زبان دانیلو راز رو بیرون کشید. چرا که دانیلو گفت راز شکست ناپذیریه. من اسلاحه منه. زن که به هدف خودش نزدیک شده بود از شوهر خودش خواست تا به همون بره و برای مهمانی بزرگ آماده بشه. او همین کارو کرد و زن بیوفا از فرصت استفاده کرد و اسلحه و لباس اون رو برداشت و به جای اون اسلحه و لباس دیگه گذاشت و به دشمناش خبر داد که الان میتونن دانیلو رو شکست بدن. دشمنان رقیبان دانیلو که از او درد سرها دید و هقارتها کشیده بودن به یک باره به با اون یورش بردند و اون رو کشتند و بدنش رو تکه تکه کردند و در کیسه بزرگی ریختند. اون کیسه رو تو ظرف و بزرگی گذاشتند و بر پشت عصبی بستند و اسب را روانه بیابان کردند. اسب رفت و رفت تا اینکه به خانه همون دختر زیبایی رسید که به دانیلو و قدرت رو شکست داده بود. دختر با دیدن اسب و ظرفی که از تکه های بدن دانیلو بود سخت پریشان و افسوس من شد و گفت خدای من دانیلو چه بلایی ای بر سر تا ظرف و کیسته رو از از پایین آورد تکه های بدن دانیلو رو کنار همچید و از چاه چند سطل آب شفا بخش بالا کشید و بر بدن بی جان اون ریخ و آب حیات جانی دوباره به اون بخشید وقتی زنده شد و دختر زیبا رو روبروی خودش دید ناباورانه خندید و خداوند رو شکر کرد دختر زیبا دانیلو رو نکوهش کرد که چرا به توصیه اون عمل نکرد دختر به او گوش زد کرده بود که نباید تا هفت سال راز خودش رو برملا کنه دانیلو از شرم شرمساری چیزی نگفت و ساکت و پشیمان روبروی دختر ایستاد و چشم به زمین دوخت. دختران رو را بخشیده از اون خواست که کمی استراحت کند تا ببینه برای اون چه کاری میتونه انجام بده روز بر کمربندی به دانیلو داد تا بپوشد از اون خواست که به همون مهمون خونه اول بره. شب اونجا بخواب و روز بعد از اون وقتی میخواد خود رو تو چشم شستشو بده از صاحب مهمون خونه بخواد که اون رو به شدت با اون کمربند بزنه. آن وقت اتفاقی خواهد افتا و دانیلو دوباره به قصر خودش برمیگرده روز بعد دانیلو به توصیه دختر زیبا عمل کرد و وقتی مهمان خاندار اون رو با شلق به شدت زد ناگهان دانیلو تبدیل به یک اسب عصب شد. عصبی بسیار بسیار زیبا. خیر کننده و تن اومد. صاحب مهمون خونه حیرت زده شد چرا که دانیلو سوار بر عصبی وارد مهمان خونه شده بود و حالا خودش به شکل عصبی زیبا و بی در اومده. بسیار خوشحال بود که چنین اسب به دست آورده. بعد اون رو به بازار هراش هر برد جمعیت انبوهی برای تماشا خرید اون اسب جمع شدند. اون لحظه به لحظه قیمت اسب رو بالا می برد تا اینکه سزار که از غذا اون روز برای دیدار از بازار و خرید و فروش مردم اومده بود با دیدن جمعیت با اون سو رفت و یک دل دلنسعد دل شیفته اون اسب شد. اون رو به پنج هزار روبل خرید و به قصر خودش برد. دخترش رو صدا زد و عسب رو بهش هدیه داد دخترش سزاراز دیدن اسب ذره خوشحال نشد و فریا زد این اسب باعث بدبختی منه باید هرچه صحیعتر اونو بکشم سزار تعجب کرده پرسید چرا باید اون اسب زیبا و بینظیر رو بکشه اما وقتی گریه و حراس دخترش رو دید دستور داد که جلا رو احضار کنه تا کارت بیاره و اسب رو بکشه یکی از, از زیبایی در دربار که ماجرای رو می از زیبای اسب خیر از زده شده بود دلش به حال اون سوخت و در گوش و اون گفت اسب بیچاره و زیبا اینها میخوان تو رو بدون دلیل بکشن متاسفم برای تو دانیلو گفت مهم نیست نگران نباش از تو خواهش می که وقتی اینها منو کشتن اولین قطره خونه من رو تو ظرفی بریزی و اون رو بیرون ببری و بر خاک باغچه بپاشی دختر زیبا قبول کرد و این رو کرد از خون اسب، درخت گیلاس زیبا و پرشاخ و برگی سر از زمین درآورد. که یک برگش از جنس نقره، یک برگش از طلا و شاخ و برگهایش رنگا رنگ و چشم نواز بودن. سه از دیدن اون درخت شگف انگیز حیرت کرد و غرق شادی شد و اون رو به دخترش هدیه داد. اما دختر این بار هم من دیدن اون دوچار استراب و حراس شدید شد و گفت این درختشون باعث بدبختی منه. باید اون رو ببرید. سزار گفت درخت به اون زیبایی برشکو جلال باغ قصر می و حیفه که اون رو ببرن. اما دختر اصرار کرد و اصرار کرد تا اینکه سزار دستور داد درخت رو ببرن. این بار همون دختر زیبا به درخت خبر داد که میخوان اون رو ببرن و نابود کنن. درخت گفت نگران نباش از تو خواهش میکنم نخوستین این قطعه ای را که از تنه ای می در چشمه بیاندازی. دختر قول داد که کار رو بکنه. وقتی درخت زیبا رو بریدن اون همین کار کرد و اون قطعه از تنه درخت تبدیل به اردکی بسیار بسیار زیبا شد که تا آن روز هیچ کس مثل اون رو تو هیچ جایی دنیا نعیده بود. روزی سزار برای شکار به جنگل رفت و به چشم رسید. و اردک زیبا و فریبا رو تو اون دید و حوش کرد که اون زنده به دست بیاره. پس لباسهاش رو از در آورد و به درون چشمه پرید. اردک فرار کرد و سزار به دنبال اون رفت و رفت تا اینکه از ساحل دور و دورتر شد. اردک ناگهان به ساحل برگشت و لباسهای سزار رو که در حقیقت همون لباسهای شگفنگیز دانیلو بود پوشید و به شکل روز اول خودش در اومد. از آن سوی سزار که از شکار اردک نامید شده بود به ساحل برگشت و ناگهان دانیلو رو روبروی خودش دید. دانیلو اون رو کشت و به قصر برگشت. اون دختر زیبا رو که جونش رو نجات داده بود جستجو کرد و با اون ازدواج کرد و دستور داد دختر بی وفای سزار را هم بکشن. او با همسر زیباش سال‌های سال با خوشی زندگی کردند و دانیلو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 قصرهای باشکوه و مهمانیهای بزرگ شاهانه قصه از سفرهای دور و دراز با پای پیاده سفر شاهزادهها و شاهان با اصفهای تندرو و جادویی به سرزمین های ناشناخته